منظر سلطنه پارا که روی رکاب راست درشک گذاشت چرخای چپ گردونه از زمین بلند شد و از با بیتابی سمکو کوبیدند و سر و گردن را در افتار جا به جا کردند و زبان و دندان به دهنه ساییدند تا چهار دست درشکچی و ملیه و زمان ما تحت عظیم منظر سلطنه را به داخل درشک فرستاد و تعادل چرخ و گردونه برقرار شد به محض اینکه، ملی زمان هم شد، سورچی گلو را از اطراف گالشش تکاند و کپنکش را بیشتر به دور خود پیچید و کلاه نمدش را پایین روی ابروها کشید و گره شال پشمینه را زیر چانش سیفت کرد و روی صندلی چوبیش نشست و دستهای از سرما ترک را زیر بغل گذاشت و دهان به قرگرهای زیر لبی و نامفهوم گشود ملی زمان گفت را بیوفم اون را بیوف ما حسلی نقنق نداریم مکنیز مل باغیری سورچی گفت واقع هم را توی شلاب و سنگلاخ پای یکی از این حیفورا بره تو چاله دیگه خربی ها با را بار کن کی میتونه بلندش کنه ولی زمان گفت وام اگه داری میری چاله اصار برو شکر خدا رو بکن شای شاید خندقا رو پر کرد برو واسه این دو قدم را داری از زنی پدر از تا که راهی نیست. اگه قرار بود بری دروازه دوراب یا سر قبر آقا چی میکردی؟ و بعد رو به خواهرش کرد و ادامه داد خیال کرده منم به سیاق سپاهدار بهش گفتم برو فرنگستون که انقدر میخونه. می‌خونه گفت واخه ما که امروز مسافر نم بریم قشقو میکشیم. ما از سلطنه که از چاقیش مفتخر بود با خنده گفت خفشی الهی ملی زمان صدا رو بلند کرد خشگاو ننته حرف نامربود نزن سرتو بنداز زیر دهنتو ببند راهتو برو به مقصد کرسیم منامت با من وگر نه سورچی که تمام این بازی و برنامه را به قصد شنیدن کنم این آم اجرا کرده بود دندانهای زردش را به خوش نشان داد و گفت بروی چشم بروی ما خدمت گذاریم ما فرمان بریم بعد چشمش گردا گرداگرد منظر سرطنی شرخاند به منظر زمان گفت ما همشیره ماشالله ماشالله پربار ولی زمان رو به منظر سرطنی گفت مزم میریزه بعد اضافه کرد حالا اون کالسکه رفت خواهر ولی در فکر کالسکه دیگه باش اینطور نمیشه اگه من از سلطنه پیشنهاد منور و دوله را در سر نداشت و تمام این چند شب را در رویای صاحب شدن ثروت سکین خانم نگذرانده بود از این حرف ملیه زمان آشفته میشد در این دوران وانفسا که اعیان ترها هم از خیر کالسکه میگذرند ملیه زمان چه دستور و صادر میکند از کجا با این همه گرفتاری در عین بیپولی دوباره کالسکیچی و مهدر و طویله داره کنند؟ اما تخم فکری که منور دوله بی هوا و مقصد در مغزش کاشته بود، شبان روز بارور شده بود و جز گل و میوه بری نداده بود و صندوق جواهرات و تاغه های ترمه و ظرف های و سپوست دو محصول پسته و انگور سالانهای بود که در مقابل چشمش دست و خیز می و به نشاتش می بنابراین با مدارا به خواهرش گفت، حالا تا ببینیم. ملی و زمان که خود را آمادهی گومگو با منزه و سلطنه کرده بود، از ملایمت او متعجب شد و گفت، شو ببینی از چی در سر می منازو سلطانه خندی ریزی کرد و جنباندن بدنش را با تگان‌های درشت هماهنگ کرد و گفت هیچی حالا تا ببینیم تا چی پیش بیاد فکر کالسکرم میکنم هم تمام وجودش میخواست که مطلب را با خواهرش در میان بگذارد و هرچه زودتر دست به کار بله بران بشود و هم هراس داشت که اگر موضوع را عنوان کند حرف دهم به دهم بچرخد و برای دختر سکینه خانم خواستارهای دیگری پیدا شود و عروس از چنگش در برود ملیه و زمان با آشنایی به روحیات منظور سلطنه حدس میزد که قضیه مهمتر از این هاست و آشکارا هنوز در انتظار جواب بود منظور سلطنه دیگر تاب نیاورد و دل به دریا زد و گفت در فکرم که عباس و سر و سامونی بدم ولگردی بسیشه چقدر زنی براش بگیرم که پابند خونه بشه ملی و زمان که انتظار هر جوابی را داشت جز این جواب گو واش و حرفا. حالا عباسخان شکر خدا هنوز وقت داره. اول با شمسی جان و فرستاد خونه بخت تا بعد. مناز و سلطنه حرف ملی زمان را برید و دل را سفره کرد. نه ملی متوجه نیستی. من کاری برای شمسی از دستم ساخته نیست. من که از این ارزه ها داشتم؟ ارز ماشاءالله ششم بددور تو داری، انشاءالله براش خالگی میکنی و شوهری جفت داماد خودت براش پیدا میکنی، اما برای عباس نقشه دارم. از سلطنه به ندرت به درد و دل مینشست، مشکلاتش را معمولاً با قرولوند عنوان میکرد و توقعاتش را با اخم و تخم طلبکاری، اما حالا احوالاتش دیگر بود و ملیح و زمان میدید، که خواهرش روی دنده حرف زدن است و چون کنجکاویش تحریک شده بود که از نقشه سردر بیاورد برخلاف معمول که حرف را از منازو سلطانه میقاپید و خودش رشته کلام را به دست میگرفت فقط گفت ها خب بگو منازو سلطانه تا جایی که میتوانست به طرف خواهرش خم شد و به نجوا گفت میخوام دختر سکین خانم رو براش بگیرم و خیال راحت کنم سکین خانم در ذهن ملی و زمان وجود نداشت و آنن به یادش نیامد کیست و انگشت اشارش را روی گونه گذاشت و با اخم تفکر به صورت مناظر سلطنه خیره شد و پرسید سکین خانم مناظر سلطنه گفت زن برادر آقا زرموی بچه ها ولی زمان گفت ها بله بله اون که خزوینه و جلوی زبانش را گرفت که بگوید خلوز هم است منزءو سلطنه مختصری از خواهرش فاصله گرفت و بدنش را تندتر از حرکت درشک جنباند و گفت بله قزوینه باید یکی رو بجورم یا روونه کنم اونجا که کارو و صورت بده سیغه عقد جاری کن و جاری کنه و دخترو بفرسته تهرون ملیزمان مزیتی در این, این وسلت نمیدید و علت شتاب خواهرش را ابدا نمیفهمید و همچنان با دقت و ابروهای گره خورده منزء را نگاه میکرد من از که چشپایش به شنگولی گشاد شده بود و برق می‌زد ادامه داد انگار سکینه خانم نمی شناسی صندوق صندوق جواهر و ترمه داره دکون داره مرک داره آب و زراعت داره همه اینا افتاده کنج قزوین چرا سب کنم یکی دیگه صاحب شه بیلر بگی با ملا صالح بره دختره رو و بر یکی از پسرا چنگ بندازه رو کرور کرور هستی از کجا معلوم گردن گرفته بعدی که سکینه رو همه رو بالا نکشه آدم چه میدونه از اقبال سکینم برمیاد که یکی دیگه بره سراغش یه تواب و رنگی دوره جوانی داشته هنوز داره نونشو میخوره وگرنه شعور و عقل ماش، لا و ابدا و اصلا ولی زمان که تازه متوجه داو بازی شده بود از سر کنجکاوی و تفاهم گفت خوب خوب عجب عقلی داری میکنی خواهر چه عروسی داری به خونت میاری مبارک باشه مبارک باشه منازه و با نگرانی باز به طرف خواهرش خم شد و گفت ملیجان تا دختر عقد نشود و وارد خونه ما نشده مبادا تو رو به روح پدر تو رو به عربای خاک مادر تو رو به جان فخر زمان مبادا یک کلمه به کسی بگی مردم حسود و بخیلن آدم چه میدونه تا ما روی که دست بذاریم هزار خواستار پیدا میشه تو رو به عربای ولی زمان با تنگ حوصلگی رشته قسمهای من از دوستلتنا را قطع کرد و البته خواهر چه حرفا میزنی؟ من جز سعادت تو و بچه ها چی میخوام؟ چه کار دارم به کسی بگم؟ اصلا به کسی چه این مسائل؟ من و تو که بعد از ماجرای خانداداش جز هم دیگه کسی را نداریم. البته باید رازدار هم باشیم. من درست زیاد حرف میزنم اما والا دهنم قرصه. ذکر برادرشون همیشه من از دو را منقلب کرد و گفت فقان از دست خانده داشت فقان فقان خیر نبینه از زندگیش میگن یه زن جرمن هم گرفته. ملی زمان گفت تابعیت آمریکو داره اما فرنگی الاصله. من از دو پرسید فرنگی تو ینگ دنیا؟ ملی زمان گفت خباره دیگه تو ینگ دنیا از هفتاد و دو ملت رخته. از سلطنه برای لحظه دندانها رو کلید کرد و بدنش حرکتی ای به خود گرفت و به گوشم گفت تا حالا که صاحب تخم و ترکه نشده الهی از کمر بیفته و پول ناحقی که از ما خورده و برده بالاخره بعد از مرگش به حقدار برسه ملیح و زمان که مطلقا کینه ی سلطنه را به برادرش نداشت و پنهان از خواهر مکاتبه گاه به گاه هم باهو داشت بی اختیار گو وای نگو نزه خدا نکنه به مرگش راضی نباش کاری بود که پدرمون کرد خانداداش را همه جا با خودش برد و وکیل و وسیش کرد در اینجا حرفش را درس گرفت که انان اختیار از کف ندهد و همه چیز را نگوید همینقدر هم که گفته بود از انصاف به دور بود ولی برای آرام کردن خواهر ناگزیر حرفی زد و رد شد دهن به دهن گذاشتن با منزه السلطنه جز قهر و تلخی سمری نداشت چه فایده که بگوید رفتار منزه سلطنه با پدر مسبب همه نقارها ها بوده است اگر من از او سلطنه آنطور به ده گروه پدر چشم ندوخته بود و با گروه بر ساخت و پاخت نکرده بود که ده را صاحب بشود شاید بسیاری از اتفاقات نمی افتاد. پدر چنان دلکنده از مهر دختر از وطن نمی رفت. در کشور اجنبی بعد از مادرشان زن جدید نمی گرفت. از این خانبادش نمی برید. خوانداداش را به ماندن در اروپ ترغیب نمی کرد. عمرش چنین نمیشد در واقع ملیک و زمان خودش را بیشتر قربانی ما دوستی خواهر می دانست تا تصمیم ناروای پدر یا ارسخاری برادر که هر دو جای انگولت داشت ولی در ذهن بیمار و سلطنه ابعادی غیر باقی به خود گرفته بود اما از گفتن این حرف ها چه فایده اگر آدم آنقدر از زندگی نیاموزد که بداند همه عمر پی روغن ریخته و کار شده اش نمیتوان ریخت که مونش را در آسیاب سفید کرده است شکر گریمش را از آب کشیده است به سرش را روانه پترزبورغ کرده است و دخترش را به مردی داده است اصیل و تحصیل کرده و متجدد و عاشق. به دخترش هم فهمانده است که قدر این موقعیت را بداند شوهر از او سی سالی بزرگتر است و از شب های دوران جوانی است و درستی برایش نمانده است پس فرداست که سر زمین میگذارد و شهرت و ثروتش برای فخر زمان میماند من از دوستانی که افکار خواهرش را تغیب نمی کرد، به کین گفت چرا نگم؟ چرا به مرگش راضی نباشم؟ اگه خانداداش من اینطور بی جهاز و بی برگ نمیزاش، من کی زن میز محسن خان قاضی نیمی که در زندگی نفهمید فایده پولشیه. هرچی داشت و نداشت وسط ازش توپ بست. اگه فتلیشا از این خاندان داماد برد والا فقط با سه این بود که می دونست میشه سرشون کلاه قرمز گذاشت. همشون شاهد باز، همشون قمار باز. ملیزمان زمان باز آن قسمت از صحبت منزده و را که مربوط به برادرشان میشد نشریده گرفت و فقط گفت بابا خواهر یه جو انصاف داشته باش محسن خان مرد و رفت خودش نیز خداش که هست دوازده دفع شکمه تو رو بالا ورد باز بهش تهمت غلامبارگی میزنی حالا یه آس و گنجفهی میزد نرات بود شطرنج بازیم کرد هرکه تو زندگی عشقی داره دیگه حالا خوب نیست این حرفا رو میزنی شکون نداره وسط صحبت عروسی پسرت ول کن. تلق و طلق سم از پا و رسب پست و بلند راه سنگچین بودن و خاکی بودن مسیر میزان گل و شل جاده تند و کند و خفه و رسا میشد. گاه به گاه صدای سوت شلاغ سورشی و هن و هشش بلند بود. حالا درشکه ایستاده بود و درشکه چی می خب دیگه جون بکن را بیوف شیش تا ست شاشیدی خیلی سرت بسته. ولی هنوز صدای شرشر می آمد و از زیر شکم از بخار بلند بود. پسر بچه پشت درشکه سوار شد و سورچی قنوت را که بالای سر از میگرداند روی پهلوی پسر پایین آورد و گفت تخم با جن رد شو ولد چموش سواری مفت به تو نیمده رد شو. جوانک با شلاق دوم که به دست سرما آزاده خورده بود آه داد و غال را بلند کرد و با دستی که گاه جلوی دهان میگرفت و ها میکرد و گاه میان دو پا میگذاشت و گاه زیر بغل با جست و خیز و نسار فوشهای آبدار به درش کچی دور شد و از هم بعد از کشیدن شیهای کوتاه و لرزندن سرایال باز به راه افتادند و تلق تلق آهنگین سمها از نو بلند شد بقیه راه در سکوت گذشت من از سلطن باز به رویای ثروت آتی فرو رفت و ملیه و زمان مسائل خواهر را به پس ذهن فرستاد و در این فکر بود که باید حالی دخترش فخر زمان بکند که داشتن فرزند از شاهزاده جزو به است و تنها تزمین آینده وقتی رسیدن مشباغر به عادت دیرین در کارسکرو را باز کرد ولی خانوم ها دم در از درشک پایین آمدند و این بار سورچی پارا روی رکاب مقابل گذاشت تا درشک برنگردد و از انعامی که گرفت چندان راضی به نظر نمی آمد و بی حافظی سوار شد و رفت مشباغر با ماتم ماتمزده توضیح داد حوز حیات خلوت ترک خورده من از سلطنه که هنوز از مشکلات پیاده شدن فارغ نشده بود و مطابق معمول چادرش سر شانه ها بود با پرخاش گفت چشم تو کور مگر نگفتم قبل از صورت سرما توش تیرک بنداز به این قبله قبل از چه لزمستون توی رکه انداختم هنو رو آبه والا آخر زمون وسط بهار و زمهریر ملیو زمان زیر بازوی خواهرش را گرفت و با هم وارد خانه شدند من از سلطنه نفس نفس زنان میرفت و مشباغر را دشنام میداد و مشباغر از پشت میامد و گاه میگفت خانم انقدر با من بد دهنی نکن بالا آجزم کردی آقام که دیگه نیست نور به قبرش بباره که پس من در همون آقا اینطور جرید کرده آب بی لجام خوردی که حالا جواب پس میدی چگو می‌خوره شیتون میگه ولی زمان رو گفت شیتون گوشش کر زبونش لال ولکن خواهر و با دست و از پشت منزل سلطنه به مشباغر اشاره کرد که برود و بعد به آوای بلند زد شمسی جان شمسه سلطنه شمسی خانم بیا جانم هستی خانه بیا ما آمدیم و وقتی زیر کرسی نشستن شمسلطنه هم وارد اتاق شد شمسی موهای بلند سیاهش را که تنها وچه زیباییش بود از نیمه پیشانی و گرداگرد سر لوله کرده بود و چشمهای ریزش زیر ابروهای پر گود نشسته بود و دماغ درشت و لب نازک صورتش را مغرور جلبه می‌داد. یک تخت تور سفید حاشیه دالبری روی سرش انداخته بود لباس یقه پهن قهوه‌ای پوشیده بود که بر سر آستین ها و پای دامنش مغزی دوزی سفید داشت جوراب پشمی دو پوده و پوتین چرمی فرنگی به پا کرده بود و گوشوارهای شرابهی به گوشش سنگینی می‌کرد. من ما سلطنه پرسید کجا داری میری که سیات در بردی و غیرقش ها کردی؟ شم سلطنه با بی جواب داد. قرار با عباس بریم اکاس خونه چند تا شیشه عکس بندازیم. امیرا با خودمون میبریم ولیو زمان گفت خالی جان من از برات خبر داره و چشمک زد. منذر سلطنه هنوز خودش را آماده نکرده بود که برای دخترش حرف بزند. یک ایه به خواهرش تحویل داد و وقتی دید چمسی با اخم سوال نگاهش میکند گفت اول به ملک بگو چایی بیاره بعدم پوتیناتو درار بیا زیر کرسی تا خبر برسه. شم سلطنه برای اجرای هیچ کدام از این دو فرمان حرکتی نکرد و ملوک بیان که دستوری گرفته باشد به ساس سماور را روی میز قلیان گذاشت و سینی استکان و نلبکی و غندان را که بیرون در دست مشباقه بود گرفت و روی کرسی چید و به منظف سلطنه گفت قند حب شده همه ی داریم یک کل قند به دخان جان بشکنم منظر سلطنی گفت چقد قند تو این خونه خراب شده خورده میشه همین دیروز بود دوتا کل قند شکستی ولی به تقلا افتاد که کلیدهایش رازی تشکش بیرون بکشد ملوک گفت به هرزت عباس دیرو نبود اون روزی بود که نایب عبدالله خان اینجا بود منظر سلطنی گفت خبه قسمی به خود نخور پتیاره بیا این رو بگیر از تو گنجه کل قند بردا باز در قفت کن کلیدها رو بیار. ملوک گوشه شارقد درازش را پشت سر انداخت و بی صدا پی کارش رفت سماور جوش آمده بود شم سلطنه چای را در غوری ریخت رویش آب بست و سر سماور گذاشت تا دم بکشد ملیح و زمان به خوارزادهاش گفت کفشات درار خال جامبی بشین که حرف و صحبت زیاده چه چش ششات گوت رفته شمسی جان؟ شمسلطنه روی اصلی پای دیوار نشست و بند پوتین ها را دانه دانه از دکمه آزاد کرد و به خالرش گفت دیشب بعد خوابیدم خاله تا صبح قلط و با قلط زدم ملی زمان گفت شب قبل از خواب یه جشونده گلگاف زبون بخور خواب میاره از صد تا مثبت بهتره من از دو سلطنه رو به دخترش گفت اون اصلی که تاب نداره روش نشستی پایش در میره مری زمان با خنده گفت اون که مثل تو خدا درش قلاله نبسته که با نشستن رو اصلی بشندش من از سلطانه هم به خنده ریزی افتاد گفت اینقدر از این دو پرده من بگو تو آبشاه ها زیر کرسی زانوها را بغل گرفت و گفت که این سرما تموم میشه کرسیا رو ورداریم و باز به سوال به مادر ششم دوخت من از گفت حالا یه چیزی من گفتم یه فکری هم دارم ولی هنوز نه به بار نه به دار باید ببینیم چطور میشه دست بکار شد چندان راه دستش نبود که به دخترش بگوید قبل از عروس کردن او میخواهد برادرش را داماد کند میدانست خبر را خواهی نخواهی دیر یا زود باید بدهد از این رو از ملیه الزمان خواسته بود که با او به خانهش بیاید مهازا حتی در حضور ملیح الزمان هم از باکنش شمسلطنه داشت چون حریف بدقلقی و دروشگویش نبود شمسلطنه گفت حالا چرا به رمز و کنایه حرف میزنین موضوع چیه؟ شمسلطنه امید نداشت که مادرش هیچ کاری را درست انجام بدهد و میترسید باز بخواهد فروش همم و کاروانسرا و خانه پامنار را میان بکشد و باز دعوا سر بگیرد یک هفته بعد از مرگ محسن خان منظر سلطنه صحبت فروش مستقلات را کرده بود و شمسی جواب داده بود اینا ارس ماست و جز امیر ما هیچ کدوم دخالت در این مسئله کار شما نیست من از داد سلطنه غیز کرده بود و غذب کرده بود و نفرین کرده بود و گفته بود پول نقد تو دست و بال من نیست نمیفهمی این خونه رو چطوری باید گردون من که حاجم این ضرب نیستم که سکه بزنم اینجا چند سر نونخور داره شکما رو چطوری باید سیر کرد تو که بعد از آب و گل در اومده باشی هنوز ول میسابی و سماق میمکی اون عباسم که سر به هواست و فقط یللی تللی می خونه. امیرم که سرش هنوز تو لیغه دواته پس من چه خاکی به سرم بریزم جم سلطنه گفته بود اگه من یکی سر بارم به زودی رفت زحمت می اما سهمم و نمیفروشم و همانجا تصمیم گرفته بود که زن عبدالله خان نایب بشود که خیش دورشان بود و هر وقت به خانشان می سبیلش را برایش میتابید و شش رولش را روی کمر جا, جا می کرد و تا جایی که صاحب منصبیش اجازه میداد غمیش قمیش می و دلبری میکرد حالا زن داشت داشت زنش آبستن بود که بود در خانواده کسی حوو سر کسی نبرده است و بیش از یک زن هم نگرفته است اگر عبدالله خان خواستار است خودش میباید سن کار را از سر راه بردارد ملی و زمان به شم گفت خبر خوش خال جان سب کن بابا من از بگو دل بچه آب شد من از سلطنه گفت اول یکی به من یه چایی برسونه که گلوم چوب کبریته ملی و زمان از جایش بلند شد و گفت من چایی میریزم تو شروع کن من از ده سلطنه شانش را در مشت گرفت و با تکانهای آونگی سر و شانه از دخترش پرسید تو سکین خانمو وقت دیدی زنمو تو میگم که غزوینه شم جواب داد او ده دوازده سالی پیش همون تابستونی که رفتیم تاکستان دیدمش تابستونی که شما امیر آبستن بودین گار اونم یه پفش ده بود زاییده بود یه بچه زیر پستون داشت ملی زمان سینی استقانهای کمرباریک شستی را که حالا پر چای بود باز وسط کرسی گذاشت و قبل از نشستن قندش را کنار لپ جا داد که دیشلمه بخورد و وقتی زیر لحاف جا به شد گفت صحبت از همون زیر پستونی خال جان و باز چشمک زد و خندید منظر سلطنه می‌خواست آرام تر جلو برود و به همین دلیل استکان چایش را زمین گذاشت و فرصت ادامه صحبت به ملیح و زمان را نداد و گفت میدونی که سکینه با دست پرخونه عموت رفت از دولت سر شوهرای قبلی حسابی بارشو بسته بود عموت هم که وضعش الحمدلله بد نبود خوب داشت مثل باباتم و باز زندگی نمیکرد کرد حساب و کتاب داشت باز استکان چایش را برداشت شمسی با قندگیر توی قندان ور رفت با چنگکش حبه ها را میگرفت و ول میکرد و منتظر بود که این مقدم چینی ها توام بشود و فقط گفت خوب من از آسلتنه هم که چایش را دیشلمه میخورد قند را در دهنش جابجا جا کرد و مکید و رویش قلوب دیگر چای خورد و گفت چی میگی اگه من دخترم اون تو بیارم با ما زندگی کنه شم با خلق تنگیغن گیر را میان سینی رها کرد عقبتر نشست و گفت خبر خوشتون اینه دخترم اویی که من ندیدم و نمیشناسم توی این خونه که منو و برادرام هم سرباریم حالا چی شده ملی و زمان دیگر بیتاقت شد و گفت عقدش کنه و بیاره خال جان و با صدای بلند خندید شمسی گفت برای کی عقدش کنه بعد مثل اینکه موضوع برایش روشن شده باشد اول به پرسش و بعد به تأیید گفت برای عباس برای عباس و خنده او هم بلند شد در همین موقع امیر از در بارش شد از خواهرش پرسید پس این عباس کم نگفته بود ما رو امروز میبره عکاس خونه شم سلطنه بدون آنکه جواب برادرش را بدهد از منظر سلطنه پرسید حالا خود شادامات خبر داره؟ امیر پرسید شادامات که شمسی گفت عباس از صدای قطقه خواهی خندهی ملوک امیر فهمید که عباس رسیده است و مشغول انگولک کردن ملوک است و به دو توی راه رو رفت و گفت عباس میخوان دامادت کنن بیا اون از زستتنه ولای بلای نشی بچه صدا تو ببر بیا تو ببینم عباس و امیر با هم وارد شدند عباس خان یک عبای خوشبرش ناینی سر شانه ها انداخته بود و عینک پنسی سر دماغش و کلاه مشیر دولهی بر سرش نکه بینیش از سرما سرخ شده بود و آن یک دستی که از دستکش بیرون بود در این حیبت بیست و چند ساله به نظر می‌آمد. امیر یک بار دیگر گفت میخوان دامادت کنم عباس خان که کلت زبان بود باخنده گفت بهده ایوش خوشگل باشه من زمان هم به خنده افتاده گفت عروس از خوشگلم هم پول داره خالجا عباس خان گفت من که قیه نیست بقل پولش بخوابم از سعید بگین چه شکلیه من از سلطنه هم میان ریز ریز خنده گفت مثل هلوی پوسکنده خیالت راحت شد